سوره مبارکه بیانه هست این سوره سوره مدنی هست از نظر ترتیب این سوره یک سدومین سوره هست عرض کردم هشتاد و تا سوره مکی هستند بعد از اون مدنی هستند الله تعالی در سوره قدر ب... عظمت قرآن مجید را بیان فرمود حال در سوره بیانه زجر عتاب هست سرزنش هست بر اناد و کفار و مشرکین که از این کتاب با عظمت از این کتابی که در اون شب قدر نازل شده اعتراض میکنند به جای اینکه استقبال چی کنند چی میکنند اعتراض میکنند الله میفرماید لنگ یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین نیستن کسانی که کفر کردند از اهل کتاب و مشرکین منفکین آنها دست نمیکشند از مسیر باطلشان از مسیر شرکشان انفکاک نمی‌شند یعنی دست نمیکشند، جدا نمی‌شوند حتی تا تیاتیهم البینه حتی که بیینه برشون بیاد بیینه چیه بینه پاینش منیسی مبدل منه رسول این بدل است اون بیینه که خدا فرماید یعنی رسول من الله رسول از جانب خدا بیاد که یتل صحف مطهره تلاوت کند های پاکیزه یعنی سوره های قرآن مجید را که اون سوره ها یا از کنم که آيات قرآن مجيد متحره هستن يعني أزباطل پاکن والصحف القراطيس ان برقها وأوراق ميقن التي يكتب فيها والمراد بتطهيرها تنزيهها عن الباطل متحره أزباطل پاکن ببينت إن جاي سؤالي مفسرين مترح کردان كي الله تعالى مفرماد اهل کتاب و همچین مشرکین دست از شرک نمیکشند منفکی منفکین نمی جدا نمیشوند از خرافات و از شرک حتی که بیانه بیاد بیانه چیه؟ رسولی از جانب خدا بیاد که آیات خدا را تلاوت کند خب سوال اینجاست که این رسول آمد ولی بعض هم دست نکشیدن این پیشگویی که قرآن مجید این پیشگویی چرا عملی نشد این هم که منتظر رسول دیگه هستن نه رسول خاتم و آخرین رسول خاتم و نبیین آمد ولی آمد باز هم اهل کتاب مؤمن نشدند مشرکان همه ایمان نیاوردند چرا یک جوابش اینه که در اینجا خدای اززوجل حکایت می فرماید این حکایت سخنی اونهاست و گویا خداوند داره اونها را سرزنش میکنه توبیخ میکنه که این حک... اهل کتاب میگفتند در گذشته ما در آیاتی دیگه هم خواندیم اهل کتاب از گذشته دور منتظر رسول الله بودند و همچنین مشرکین میگفتند اگر ما پیامبری مثل اونها داشته باشیم ما از اونها اهدا خواهیم بود یعنی بر هدایت بیشتر خواهیم بود بیشتر عمل می کردیم اگر برای ما خداوند پیامبری مثل یهود و نصارم می فرستاد اگر برای ما کتابی مثل تورات و انجیل می فرستاد ما بیشتر بهش عمل می کردیم ما مثل اونا ناقدر نبودیم یهودی ها هم می گفتند که ما منتظریم که پیامبر خاتم بیاید مسیحیان هم منتظر بودند رسول الله صلی الله علیه و بیاد پس این در واقع این جمله این حکایت اونها که الله می فرماید اونها در گذشته بر این نقیده بودند اینگونه گونه می گفتن که هرگاه رسول بیاد ما دست میکشیم از این دینی ای که داریم از این آینی ای که داریم از این ختمشی ای که داریم اما وقتی که رسول آمد دست نکشیده این گویی عتاب است بر آنها جواب بهترین جواب همینه و جواب دوم اینه که در واقع الله عزوجل به صورت مجموعی فرموده که تو همه اهل کتاب مشرکین مسیحیان همه گرفتار شرک بودند همه گرفتار خرافات بودند و اینها میگفتند ها قرآن میگه اونها نه قول است اونها نیست قرآن میگه که اهل کتاب و مشرکین من حیث المجموع از کفر و شرک باز نمی تا رسول بیاید حال که رسول آمد بسیاری برگشتند مگر همین مسلمانانی که مسلمان شدن تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه سلم بودن بیش از یک هزار نفر یک صد هزار نفر در اون زمان جمعیت خیلی زیادی اون زمانی که جمعیت نبود. خب این همه یا مشرکین بودن یا اهل کتاب بودن خیلی مسیحی مسلمان شد خیلی یهودی مسلمان شد خیلی مسلمان مشرک مسلمان شد خب کم نبودن پس من حیث المجموع مشرکین بر شرک نماندن یهودیا و مسیحی بر دین خودشون نماندد پس الله می اینها دست نمی کشن تا اینکه که بیان بیاد بیان چیه؟ رسول من الله اطلو صحف متحره رسول الجانب الله كتلاوت مي كنت صحيفها وأوراق فاكرة فيها كتب قيمة درآن أحكامي هات بسيار مزبوط محكم دستوراتي هات مكتوباتي هس بسيار محكم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة الله مي فرما يتكساني كي أهل كتاب هستن كتاب داد شدن اونها متفرق نشدن مگر بعد از اینکه بیین آمد یعنی اختلاف کردن بعد از اینکه این رسول و کتاب آمدند یک گروه ایمان آورد یک گروه ایمان نیاورد در حالی که در کتابهای خودشون به اونها دستور داده شده که همه بر مسیر توحید باشند و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين امر نشدن در کتابهای سابقه مگر اینکه فقط الله را عبادت کنند الله را عبادت کنن خالص برای مخلصین له دین خالص برای او عبادت را داشته باشند کسی دیگر را بغیر از الله عبادت نکنند حنفاء در حالی که یک سو باش از ادیان باطل کنار بکشن از یہ ادیان باطل از ادیان دوری کنند و یقیم الصلاۃ و نماز را برپا بدارند یعنی عبادت جانی و یؤت الزکات و زکات بدهند و ذالک دین القیمه دین استوار، دین محکم اینه که از همه کنار بکشند و فقط و فقط بر دین توحید باشن حال خدای تعالی تخویف بیان میفرم اینهایی که نکردن اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِئِن همانا کسانی که کف کردن از اهل کتاب و مشرکان في ان... انهایی که ایمان نیاوردن انهایی که تبعیت نکردن ماان دان بر هم مسیر غلطشون ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين همانا کسانی که کفر کردن از اهل کتاب و مشرکان فی نار جهنم خالدين فيها انها در آتش جهنم همیشه در آن آتش جهنم خواهن ماند اولئك هم شر البريه اینها هستن شر البريه بدترین مخلوقات انها بدترین خلائق هستند واقعا انسانی که ایمان نیاورد و انسانی که بر کفر و شرک ادامه بده این همه مخلوقات حیوانات ات از هم بدتر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات همانا آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند اولائک هم خیر اینها نسبت به تمام خلائق، نسبت به تمام مخلوقات بهترین هستند. و اینها پیش الله پاداش دارند. پاداششون چیه؟ جزا اُهم عِندَ رَبِّهِم صاداش اینها نزد پروار جنات هست بهشتی که تجربه من تحت الانهار زیر درختها و قصورش نرها جاریس خالدین فیها ابدا در اون بهشت همیشه هستن به صورت ابد به صورت و معبد همیشه هستن رضی الله عنهم و رضو عن الله عز وجل راضی شده از آنان و آنها راضی هستند از ربشان ذالک لمن خشی رب این جنات و رزوان برای کسی هست که خشی رب قبلا هم خاندیم که بهشت مال اهل تقوی اهل تقوی اهل خشیت کسانی که از رب می ترسن. کسانی که در وجود آنها خوف هست آثار خوف مشخصه آثار خوف در انجام طاعات و عبادات میشه ذالک لمن خشی ربه این برای کسی است که از ربش رب میترسد اینها مستحقین بهشت است.